رویات اومد منو با خودش بکت یه جای زیبا بودی با درخت سرکش باد نوازشت میکرد با دستای نرمه داشتی میخندیدی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 این که یه رویا نیست ولی میدونستم من با چشمای خیز دویدی دویدم نمیخواستم از خواب پاشم حالا که کنارم نیستی بذار تو روی کنارت باشم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 ماکس رگای پنهان نداره من آناتومیش خوندم نمیگویم، میخندم از ته دلم سراختی بارون موندن خلت با قیشو همش یکی کم بود همونی کی یاد تمام عالم بود باغشم افتاد بود همش یکی کم بود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 سال ها باید بگذر که بفهمیم چاقه یا لاغر چشما و موها غیرعذاله کشن مثل همینای دیگه که بود اصلا این بچه چی داره غیر از یه مش پوست و استخونه نه حتی دست و پاشم درست در نیومده این جنین شبیه اون میلیون تا میلیون دیگه دیگه‌ایه که تو دل ماما نشونن و در از اینا بیشتر از اینکه شبیه آدمیزاد باشن شبیه لوبیا چیتی‌هاین که کلاس پنجم دبستانی کلاس علومه و گفتم بزرگ لای دستمال نمدار که جوونه بده سبز بشه و بعدش هم بکار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 تو شاد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 شته این های بسته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 حالا جنین ما اومده به این آدم بزرگان. هر هرکی میگه که این بچه هم مثل شبیه خودشه. اصلا با یک نوع افتخار خاصی هم این جمله رو ادام میکنن. انگار مثلا کلاس داره که بگن این بچه شبیه به اون یکی میگه فلانی جون اصلا چه شده شبیه توه. یا فلانی جون هیکلش مثل خودت درشت ماشالله.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 تی ما کم کم داره بزرگ میشه. یه سال دیگه میره مع ولی هنوزم که هنوزه این بچه عملا دیفالتش رو خوبی کردنه. روش هم سفیده. شاید رفتارای آدم اطرافش تو مغز و کلش ذخیره کرده باشه ولی با این حال هنوز سفیده. اون مهربونه. سفیدی مطلقی که هنوز عامل زمان و ما آدم بزرگه به اون فرصتی برای کر کردن و سیاه کردنش ندادیم. این بچه ای ما حالا دلش میخواد بازی کنه یاد بگیره. دوست داره بعد از اینکه سواد دار شد همه ی های روی در و دیوار رو بخونه نمیدونم هم آقای فروید و پیاجو و باقی دوستان نظرشون چیه البت میدونم آوری خب من اینجا حرف میزنم و دلم هم نمیخواد مثل رساله فوق سانس هی رفرنس بیاره یارا تو هم هوای ما دارا تو هم به وفادارا مرا دگر نگهدارا مخبوبم جانا به قلب ما تو سردارا کنار ما بمان ما مانا فقط به ما بگو جان آتش تر مرا به دامنت گیرام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 که همیشه ها تو جیباش قیسی و بادم و آلوال و خشکه داره من فقط همین خدا رو میشنسیم خدا فقط مهربونه فقط دوسمون داره آره از دلم من فقط همین یکی رو میشنسیم نگاه کجا کجا صدا کنم صدامو خدا خدا فقط به طور صدام منو مرا صدا کن مرا دعا کن فقط دعا کن مرا دعا کن بحث روح و مغز آدم که پیش میاد همه ساکت میشه هیچکس نتونست به طور کلی کشفش کنه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 آدم ها سفیدن. همه راه را سفیدن مگر خلافش ثابت شد یخ یخبن دونای قطبی چشمات حرارته دستانو کم کرده چشمای من ما رو اکسام آقا <متحن> از برس نخوابیده fahren kann der amon schön der dritte tapt vor rein ach war mir gult aschen uns aufhören amon کافه. در بی تو بان بسته رادی و ده کرده نبزه رو چه صدا تو رو روی تلفون بسته خورسا کم میشه منم ساعتا خوابم خود نبیش از کاما گریه میسازه خنده تو بردی آینه تب کرده روح برگردون در هنوز بازه